مینگ بیره روی نیمکت پارک نشسته بودم و ایالات متحده ای آمریکا تازه وارد جنگ با ژاپن، آلمان و ایتالیا شده بود و من تصمیم گرفته بودم ماجرای بعدیم به عنوان یک کارگاه خصوصی در بابل را به شکل یک سریال پانزده قسمتی ترراهی کنم طبعا خود من قهرمان مرد و نعنادیرت منشی با وفا و دوست داشتنیم قهرمان زن ماجرا بودیم تصمیم گرفتم، مینگ بیرم. کاراکتر فلش گردون را به عنوان شرور اصلی داستان انتخاب کنم. باید اسمش را عوض میکردم و در کاراکترش تغییراتی می تا با مقتضیات کارم جور شود. کار دشواری نبود. در واقع این کار عملا برای من خیلی هم لذت بخش بود. بخش بسیار شیرین هشت سال گذشته را صرف ساخت و پرداخت انواع موقعیت ها و شخصیت ها در بابل کرده بودم، بدبختانه تا حدی که به بهای از دست دادن زندگی واقعیم هم همانی که داشتم تمام شده بود زندگی در بابل باستان را بارها به این ترجیح می دادم که در قرن بیستم باشم و هم مقمم این باشد که یک همبرگر ناقابل برای خودم جفت و جور کنم نعنا را بیشتر از هر زن زندهی که در زندگی دیده بودم دوست داشتم خب با مینگ بیره چه باید می اسمش رو عوض کنم. این اولین کاری بود که باید می کردم. در سریال من اسم او دکتر بدل بود و در ظاهر به عنوان سخاوتمندترین و مهربانترین مرد بابل شهرت داشت. اما در خفا زیر درمانگاهش که برای ارائه خدمات درمانی رایگان به توحیدستان را کرده بود آزمایشگاهی داشت. در این آزمایشگاه در حال ساخت عشه نیرومند و شیطانی بود که میخواست با آن جهان را تسخیر کند. عشقی مجبور آدمها را به شکل سایه‌های رباتی در می‌آورد که سرآپا مطیع دکتر فرسایت می‌شدند و با کمترین اشاره او آماده انجام کارهای شریرانش بودند. او تری برای ساخت یک شب مصنوعی به کمک سایه‌های رباتی در سر داشت که در شب واقعی شهر به شهر شهروندان از همه جا خبر را به تسخیر خود درآورده و آنها را هم به سایه‌های رباتی بدل کنند. این نقشه شومی بود که او در سر داشت و تا آن زمان هم هزاران آدم تویی دست بی‌خبر و بی پناه را که برای برخورداری از خدمات درمانی رایگان به درمانگاهش آمده بودند به سایه های ربوتی بدل کرده بود. آمده بودند تا از دکتر فورسایت کمک بخواهند اما بعدش دیگر اثری از آنها در روی زمین دیده نشده بود. نبود آنها در بابل چندان به چشم نمی آمد چون آنها فقیر و تویی بودند. بعضاً بستگان یا دوستانشان برای تحقیق و تفحص در خصوص ناپدیدی آنها پیش دکتر فرسایت می رفتند. اما اغلب خودشان هم ناپدید می شدند مرتک خبیس تا کامل کردن و به اجرا در آوردن فقط یک مرحله دیگر مانده بود بعد از این تبدیل آدم‌ها به سایه‌های های روبوتی مثل روزنامه در انباری در همان نزدیکی رو هم تلنبارشان می کرد و منتظر می ماند تا در زمان مناسب به آنها را به عنوان شب مصنوعی به نقاط دنیا گصیف کنند. شعبه دواز میپخشاب میپخشاب صدایی بود که از دور میشنیدم مخاطبش من بودم اما نمی توانستم مفهوم آن کلمات را درک کنم می بخشی. می بخشی صدا شامل این کلمات می شد بابل فرو ریخت و کنار افتاد می بخشی سی کارت؟ این توی سرم را بالا آوردم سراب ها به دنیای به استلاح واقعی برگشتم صدا متعلق به یک همسنگر قدیمی در جنگ داخلی اسپانیا بود سال بود که ندیده بودمش گفتم خب میتونم باشم، سام، رشبرگر، اون شبای مادرید، روزگاری بود بلند شدم دست دادم، با دست چپش باید دست میدادم چون دست راستش سر جاش نبود یاد لحظی افتادم که دستش به هوا پرید. روز روز او نبود او یک تر دست و شعبد بازه هرفه ای بود وقتی به دستش نگاه کرد و دید که از جا پریده و همان نزدیکی روی زمین افتاده، همه یه حرفی که توانست بزند این بود که این یه چشپندی بود که هیچ وقت نمیتونم دوباره انجامش بدم. حالا سالها بعد در سان فرانسیسکو میگفت، انگار هزاران فرسنگ از اینجا دور بودی. گفتم داشتم خیار پردازی میکردم. گفت، درست مثل اون ایام خوش قدیم. گمونم نصف مدتی رو که با هم تو اسپانیا بودیم، تو اصلا اونجا نبودی. فکر کردم موضوع صحبت رو عوض کنم گفتم این روزا سرت به چی گرمه گفت همونقدر کار کار کنم که همه یه تر دستا و شعبده بازای یه دست دیگه وضع ناجوریه نه نه جای گره گزاری نیست با یه زنی ازدواج کردم که سالن آرایش داره و تو دم و دست‌کاشی کارای واسه آدمای دست و پا پیدا میشه بعضی وقتا غیر مستقیم میگه اگه یه پا داشتم دو برابر سکسی می شدم فیلن که عوضا همینی که هست جون کندن واسه امرار من دیگه گفتم حسب چی شد گمونم خاطر خاط بودن گفت دو دست که داشتم آره با یه دست خیلی نفعی براشون ندارم از من به با عنوان بازار گرم کن برای آزوگیری از کارگرای که اصدارای توی دره استفاده می کردن. ملت جمع می شدن تا تردستی و شعبده بازی منو تماشا کنم و بعد یه حرفایی راجع به کارل مارکس میشنیدن و اینکه اتحاد جماهیر شوروی چه عظمتی داره و همینطور لنین خب این آزامال مدت ها پیش بود آدم همیشه باید ادامه بده اگه یه جا که کپک میزنی تو خودت چی کردی؟ بار آخری که دیدمت یه جا سوراخ گلوله تو ماتتت داشتی و میخواستی دکتر بشی اصلا چطور شد که گلوله به ماتتت خورد؟ تو اونجا که یادم میاد فاشیستا تو جناه چپ ما بودن و هیچکی پشت سر ما نبود و تو هم تو سنگر بودی گلوله از کجا به تو خورد این همیشه برام یه معما بوده خیال نداشتم به او بگویم وقتی در حال ریدن بودم سر خوردم و افتادم رو تپانچه خودم و دوتا تیر از هفتیره در رفت و یک سوراخ تر و تمیز تو جف برام در آورد گفتم گذشته دیگه گذشته حتی فکر کردم بهش هم میده گفت میفهمم چی میگی و سرش را پایین انداخت و به جای خالی دسته راستش نگاه کرد به هر حال دکتر شدی؟ گفتم نه عوضا اونطور که من برنامه ریزی کرده بودم پیش نرفت پس حالا چی کار میکنی؟ گفتم من یه کاراگاه خصوصیم گفت کاراگاه خصوصی؟ بارسلون. آخرین باری که سام را دیده بودم سال سی در بارسلون بود سام یک تردست و شعبد باز معرکه بود چه حیف که دستش آنتاری شده بود با این حال به نظرم از دست نداشتنش داشت نهایت استفاده را می کرد آدم باید همین کار را بکند ما خاطرات مشترکی از جنگ داخلی اسپانیا داشتیم و به همین خاطر یک به ذهنم رسید که پنج دلار از او بتیخم نمیخواستم فرصت رو از دست بدهم گفتم راستی تو خیال نداری اون پنج دلاری رو که تو بارسلون ازم قرض کردی پس بدی گفت کدوم پنج دلار گفتم یادت نیست گفت نه گفتم پس بیخیال پول کلونی که نبود و بعد شروع کردم به عوض کردن موضوع صحبت سام گفت یه دقیقه کن ببینم او همیشه و بی هیچ ملاحظه یک آدم درست کار بود یادم نمیاد که پنج دلار از تو غرض کرده باشم کی بود؟ تو بارسلون یه هفته قبل از اینکه اونجا رو ترک کنیم فراموشش کن خیالی نیست اگه تو یادت نمیاد من نمیخوام حرفشو بزنم گذشته و رفته بی خیال و شروع کردم به عوض کردن موضوع صحبت چند لحظه بعد بعد از اینکه آن پنج دلار را به من داد با چهره متعجب راه خیابان واشنگتن را در پیش گرفت و از زندگی من بیرون رفت بریگات آبراهام لینکولن جنگ داخلی اسپانیا مدت پیش سپری شده بود. اما خوشحال بودم که توانستم سالها بعد پنج دلار از بابت آن به جیب بزنم. من واقعا هیچ وقت علاقهی به سیاست نداشتم. به خاطر سیاسی کاری نبود که به بریگاد آبراهام لینکلن ملحق شدم. به اسپانیا رفتم چون فکر می ممکن است شبیه بابل باشد. نمیدانم این ایده از کجا به ذهنم رسید. ایده های زیادی درباره بابل دارم. بعضیشان مستقیما به مسئله پول مربوط میشوند و بعضی های دیگر هنوز خام و نپختند. تنها دردسر این است که مشکل می شود گفت کدام ایده از کدام جنس است اما همیشه آخر کار خود به خود معلوم می شود به هر حال در رویای بابل که فرو می رفتم برای من مسئله خود به خود حل می شد بعد یادم افتاد تلفنی را که باید می زدم هنوز نزدم اما چند لحظه سرگردان بودم و نمیدانستم. بناس به بابل تلفن بزنم یا به مادرم در منطقه میشن به مادرم باید زنگ می زدم. قول داده بودم زنگ بزنم و میدانستم اگر خیلی زود زنگ نزنم دلخور می‌شود هر چند که هیچ حرفی برای هم نداشتیم چون تاب تحمل هم دیگر را نداشتیم و همیشه وارد همان جر و بحث‌های همیشگی می او از این ایده که من یک کارگاه خصوصی باشم اصلا خوشش نمی‌آمد بله بهتر است به مادرم زنگ بزنم اگر امروز به او زنگ نمی از همیشه هم عصبانی تر میشد. از این کار بیزار بودم. اما اگر زنگ نمیزدم، باید تاوانش را میدادم. هفته یکبار یک بار به او زنگ می زدم. همیشه هم همان حرفها را می زدیم. فکر نمی کنم هیچ وقت حتی زحمت عوض کردن کلمات را به خودمان داده باشیم. فکر می کنم همیشه خدا همان کلمات را به کار می بردیم. مکالمه ما دقیقا اینطوری است. الو مادرم گوشی را برمیدارد. سلام مامان منم الو با کی دارم حرف میزنم الو مامان این صدای پسر من نیست الو مامان همیشه ناله میکنم همیشه میگوید صدا شبیه صدای پسر منه اما اگه هنوز کارگاه خصوصی باشه جرعت نداره به من زنگ بزنه اصلا جرعتشو نداره هنوز یه خورده احترام واسه خودش قائله اگه این پسر منه پس حتما کارگاه خصوصی بازی رو گذاشته کنار و حالا یه شغل آبرومندانه داره. یه آدم حسابی شده که میتونه سرشو بالا بگیره و میخواد اون 800 دلاری رو که به مادرش بدهکاره پس بده. پسر خوب. بعد از اینکه حرفش رو تمام میکند همیشه سکوتی طولانی می‌کنه و بعدش من میگویم منم پسرت. هنوزم یه کارگاه خصوصیم. یه سفارش گرفتم. به زودی یه خورده از پولی رو که بهت بدهکارم پس میدم. میشه به او میگویم که سفارشی گرفتم حتی اگر اصلا سفارشی در کار نباشد این بخشی از کار ماست همیشه میگوید تو دل مادری تو شکستی و من هم جواب میدهم مامان نگو فقط به خاطر اینکه من یه کارگاه خصوصیم من هنوزم عاشقتم میگوید اون 800 دلار چی میشه با عشق تو یه بوشیر و یه تیکه نونم مهم نمیدن از اینا گذشته تو فکر میکنی کی هستی دل منو میشکنی، هیچ وقت یک شغل آب رو نداری؟ هشتصد دلار به من بدهکاری؟ کارک خصوصی هستی ازدواج نمی کی نشدم حالا من باید چیکار کنم؟ چرا من باید اسیر مصیبت بشم که بچم یه احمق از کار در بیاد؟ همان وقت من ناله میکنم که مامان این حرفها رو ن. نالهام قبلا میتوانست پنج دلاری ده دلاری عایدم کند اما این روزها هیچ پولی در کار نبود اصلا و ابدا فقط زاری ضرمه بود اما اگر به مادرم زنگ نمیزدم اوضا از این هم بدتر میشد به همین خاطر به او زنگ میزدم چون نمیخواستم اوضا از این هم که هست بدتر شود پدرم سالها پیش مرده بود مادرم هنوز هم مسئله را برای خودش حل و فصل نکرده میگوید او بابای بیچاره و بعد برام میکنه به گریه کردن. تقصیر تو بود که من بیوه شدم. مادرم به خاطر مرگ پدرم مرا مقصر میداند و یک جورهایی هم تقصیر من بوده. گیرم که من اون موقع فقط چهار سال داشتم. مادرم همیشه پای تلفن این قضیه را پیش کشد طوله جیغ میکشد. توله نجس. ناله میکنم که مامان آن وقت داد و فریاد را کنار میگذارد و میگوید من نباید تو رو سرزنش کنم تو اون موقع فقط چهار سالت بود تقصیر تو نیست ولی تو چرا باید؟ تو پتو مینداختی تو خیابون چرا مثل هر بچه دیگهی که حالا پدر بارو سرشه تو پیاده رو توپ بازی نکردی؟ میدونی که من از این بابت متاسفم مامان میدونم که تو از این بابت متأسفی پسر ولی چرا کارگاه خصوصی شدی؟ من از همه اون کتاب ها و مجله ها متنفرم همه از سایه های سیاه و بلند اون آدما که عکسشون رو رو جلدا میندازن بدم میاد. منو ترسونن همیشه گویم اونا واقعی نیستن مامان. و او هم جواب میدهد. پس چرا اونا رو می‌ذارن تو دکه ها تا آلم و آدم ببینن و بخرن؟ اگه آدم باهوشی باشی جوابشو راحت میتونی پیدا کنی. خب بفرما جواب بده. آقای کاراگاه خصوصی. جرأت داری بگو. بفرما. به مادر جواب بده. من نمیتوانم جواب بدهم نمیتوانم به مادرم بگویم که مردم دلشان میخواهد هایی درباره آدم هایی که سایه های سیاه بلندی دارند بخوانند. او اصلا این را نمیتواند بفهمد ذهن او میانهای با همچه افکاری ندارد مکالمه من را مادرم با این حرفا تمام میکند پسر مدت مدیدی سکوت میکند و بعد چرا کارگاه خصوصی؟ حالا شش ماه تمام است که مکالمه ما است مطمئنن دلم نمیخواست پول و پلم ته بکشد و مجبور باشم یک کارگاه خصوصی بشوم این همه از مادرم و از همه ی دوستانم پول قرض کنم خب حال امروز بختم گفته بود و آزادش عوض می شد مشتری داشتم و چندتا تیر برای هفتیرم بالاخره همه چیز داشت ردیف میشد مهم این بود این یک نقطه عطف بود می توانستم یک عالم مشتری پیدا کنم همه ی بدهکاری هم را صاف کنم دفتری داشته باشم دوباره یک منشی و یک ماشین اما این دفعه منشی می گرفتم که حرف گوش کن باشد بعد برای تعطیلات می رفتم مکزیک و کنار دریا لم می دادم و در رویای بابل فرو می رفتم نعنا دیرت هم کنارم بود بینهایت زیبا در لباس شنا اما حالا بهتر بود بروم به مادرم تلفن بزنم